افسان برنابی از گرغ جوان و فرهنگ به نام خداوند جان و خرد سلام به شما همراهان شبانه برمی هزار افسان. امیدواریم شب خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید و تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید در این مجال شبانه میخواییم به سرزمین زیبای آذربایجان سفر بکنیم و افسانهای را از گنجینه ادبیات شفاهی مردمان خوب این منطقه براتون نقل کنم به نام افسانه پادشاه و پیرمرد برگرفته از کتاب های آذربایجان جلد دو و سه برگردان حمید بخشمند در روزگاران گذشته پادشاهی بود به نام زنگبار که در ستمکاری ظلم همتا نداشت زنگبارشا تموم مال ثروت مردم رو به زور از دستشون در می و توی خزانه خودش جمع می کسی هم از ترس جان نمیتونست حرفی بزنه و اعتراضی بکنه در شهر پادشاه زنگبار چهل تا دز بودن که به اونا چهل حرامی میگفتند. یه شب دوزت ها متحد شدن و خزانه پادشاهو غارت کردند و هرچه تلاو و نقره و جواهرات قیمتی بود بردن. فردای اون روز به پادشاه خبر دادند که بله دوزت خزانش خزانهشو خالی کردن. پادشاه وقتی این خبرو شنید، نزدیک بود از ناراحتی و عصبانیت دیونه بشه. همون ساعت دستور داد که فوراً اده و بسیج کنین تا هر هرجوری شده دوستهای خزانه رو پیدا کنن. اما آدمای پادشاه هرچی گشتن و به سوراخ های شهر سر زدن، رد پای از دزدها به دست نیوردن. عاقبت پادشاه مردم و توی میدون بزرگ شهر جمع کرد و گفت ای مردم من چهل روز به شما مهلت میدم تا جواهرات مسروقه رو پیدا کنید هر کس رو دستگیر کرد یا جواهرات رو پیدا کرد به اندازه وزد خودش تلا جایزه میگیره بعد تهدیدکنان اضافه کرد و گفت چنانچه چه همکاری نکنید همه رو از کوچیک تا بزرگ از دم تیغ میگذرمم مردم شهر خوب میدونستن که اگه جواهرات پیدا نشه پادشاه حتما حمام خون به راه میدسه مردم شهر سخت براو شفته و نگران بودن در این میان پیرمرد مرد دنیا دیده و دانایی زندگی میکرد که هر وقت مردم با مشکلی روبرو شدن که به تدبیر و اندیشه احتیاج داشتند نزد اون میرفتند و از اون راهنمایی میخواستند این بار هم مردم بعد از صلاح و مصلحت بسیار سراغ پیرمر رفتن و گفتن پدر جان فقط تو میتونی ما رو از این مصیبت نجات بدی اگه اگه راه چاره‌ای به فکرت میرسه لطف کن و به ما بگو پیرمرد بعد از کمی فکر کردن گفت شهریار من نگران نباشین به دل دلهاتون راه ندهین شما مشغول کار و زندگی خودتون باشین من راه حل این مسئله رو پیدا میکنم مردم شهر با شنیدن این حرف پیر مرد آرامش خاطری پیدا کردم و به خونه هاشون ناید. بعد از رفتن مردم چند ساعتی درباره این مسئله فکر کرد و عاقبت به این نتیجه رسید که خودش نزد پادشاه بره و کار یافتن جواهرات مسروقه رو یه چنده بر عهده بگیره. بنابراین ازمش رو جذب کرد و به قصر پادشاه رفت. پیرمرد به دم قصر رسید به نگهبانها گفت من برای ملاقات پادشاه اومدم میخوام درباره جواهرات مسروقه با پادشاه صحبت کنم نگاه بنای قصر با شنیدن این حرف به سرعت به پادشاه خبر دادن که قبل یالم پیرمردی خاص داره به دیدار شما بیاد و در باره جواهرات مسروقه با شما صحبت کنه پادشاه هم فورا دستور داد که پیرمرد رو به داخل قصر هدایت کنم. پیرمرد با قدم های شمرده و آروم وارد قصد شد و با دیدن پادشاه ادای احترام کرد و گفت قبله عالم به سلامت باد من اومدم که بگم قول میدم جواهرات مسلوقی شما رو پیدا کنم فقط فقط پادشاه گری در ابروهاش انداخت و پرسید فقط چی پیرمرد به آرومی جواب داد فقط اینکه قربان من چهل روز مهلت میخوام تا تمام جواهرات مسلوقه شما رو پیدا کنم پادشاه گفت باشه باشه من چهل روز به مهلت میدم اگه موفق شدی هم وزن خودت پیرمرد طلا میگیری اما اما بدان و آگاه باش که اگه حیل ای در کارت باشه دستور میدم تو بزنم پیرمرد مرد لبخندی زد و بایترام گفت بله قبله شما مختارید ولی مطمئن باشید من دست جواهرات شما رو پیدا میکنم و نزد شما میارم پادشاه گفت امیدوارم همینطوری که میگی باشه پیرمرد دوباره عدای احترام کرد و از محضر پادشاه مرخص شد. مرد از نزد پادشاه که به خون اومد نشست و کلی فکر کرد اما هرچه فکر میکرد و مغزشو به کار می برد راه چاری به نظرش نمی رسید که نمی رسید. با این حال از کاری که بر عهده گرفته بود پشیمون نشد و با خودش گفت من عمر خودمو کردم و همین فرد و پسورداز که بمیرم اگه به دست شاه کشته نشم به مرگ طبیعی میمیرم پس بهتره به جای اینکه پادشاه همیه مردم شهر رو قتل کنه منو بکشه و جان مردم از دستش خلاص بشه زن پیرمرد وقتی دید شوهر پیرش سخت در فکر و خیاله گفت مرد چی شده که اینقدر گرگ فکر و خیالی؟ آه؟ چی شده؟ پیر مهد گفت زن بعد از چهل روز به دستور پادشاه گردنم و میزنن همسرش که زن آمی و سادی بود شروع کرد به گریه و زاری بعد هم از شوهرش پرسید که من حساب و شماره بلند نیستم بگو ببینم چهل روز بعد یعنی کی این گفت عب نداره زن عب نداره من برات توضیح میدم فقط یک کمی به من وقت بده بعد بلند شد و به زنش گفت من میرم بازار و زود بر میگردم. پیرمرد به بازار رفت و چهل تا هندونه خرید و خونه آورد. زنش با دیدن اون همه هندونه با تعجب پرسید: ای مرد، این همه هندونه رو برای چه کاری خریدی؟ پیرمرد به زنش گفت: مگه نمیخوای بدونی چهل روز بعد یعنی کی؟ زن سری تکون داد و گفت: البته، البته، البته. البته. پیرمرد گفت: هر روز عصر یکی از این هندونا رو میاری قاچ میکنی و میخوری. هر وقت دیدی هندونا تموم شد بدون که عمر منم به پایان رسیده زن اخ میکرد و گفت این چه وقت شوخی کردن مرد پیرمرد گفت شوخی چیه زن من دارم حقیقت رو میگم حالا هم باش و اولین هندونه رو بیار تا با هم بخوریم. زن با تعجب هندونه رو برداشت و به دست شوهرش داد و اونا مشغول خوردن اولین هندونه از چهل هندونه شدن خب بذارید پیرمرد و زنش مشغول خوردن هندونه باشن ما هم سری بزنیم به دزدان جواهرات خزانه پاچا بله به دزدا خبر رسید که کار پیدا کردن جواهرات پادشاه و فلان پیرمرد بر عهده گرفته این بود که رئیس دوزدا یکی از دوزدا رو دنبال پیرمرد فرستاد تا ببینه اون چه نقشه‌ای برای پیدا کردن جواهرات و دزدا کشیده دزد اومد خونه پیرمرد رو پیدا کرد بعد به پشت بوم رفت و از سوراخی گوش داد به حرفای پیرمرد پیرمرد و زنش که خوردن هندونه رو تموم کردن نفس امیگی کشیدن و پیرمرد گفت خی خوب از این چلتا این یکی دوست با شنیدن این حرف یک که خورد و خیال کرد پیرمرد از اومدنش باخبر شده و با اونو شناخته بنابراین با اجل از پشتبون پایین پرید و رفت و ماجرا رو برای رئیس دوزده تعریف کرد در کرده دزدا حرف دزدیو که به سراغ پیرمرد رفته بود باور نکرد و فردا یکی دیگر رو سراغ پیرمرد فرستاد اما بشنوید از اونجا که دزد دومی هم درست وقتی خودشو به پشت بوم مخونه پیرمرد رسون که همسر پیرمرد داشت هندونه دومی رو می آورد پیرمرد با دیدن هندونه گفت آه زن این یادت باشه که از چهل تا این دومیه که میاد دوست که این حرفو شنید مات و مپوت موند و بعد مثل دوز قبلی نزد رئیس دوزا اومد و قضیه رو بازگو کرد رئیس همینجور همین جور 39 نفر از دوزا رو به نوبت سراغ پیرمرد فرستاد و هر بار جواب پیرمرد و درباری هر کدوم از زبون اونها شنید تا اینکه نوبت به خودش رسید رئیس دوزا هم رفت پشت به پیرمرد و تازه گوش خوابونده بود که شنید صدایی از داخل خونه گفت زن، حالا دیگه تمام شد از چهل تا این آخریه رئیس دوزدا از تعجب خوشگش زد و بالاخره طاقت نیورد و وارد خونه یه پیرمرد شد و گفت ای پیرمرد مرد، بیا و مردانگی کن و ما رو گرفتار پادشاه نکن در عوض من همه جواهرات رو پس میدم و قول میدم تا آخر اوم دیگه دزدی نکنم. پیر مرد که خودش هم مثل رئیس دزدا از این کار خیلی تعجب کرده بود فرصت رو از دست نداده گفت باشه باشه شما محل جواهرات رو به من نشون بده و مطمئن باش که نمیذارم دست پادشاه به شما برسه مطمئن باش. رئیس دزدا شرط پیرمرد و قبول کرد و محل جواهرات و نشون داد و رفتپیرمرد وقتی محل جواهرات پیدا کرد فورا نزد پادشاه رفت و گفت قربان قربان مژدگانی بده که جواهرات خزانهٔ شما رو پیدا کردم پادشاه پرسید چی پیدا کردی دوست ها؟ اونا چی بودن پیرمرد بر اینکه قولی که به رئیس دستها داده بود بهش عمل بکنه گفت قبلهی عالم دوست‌هایی که جواهرات خزانه رو برده بودن چهل تا دزد بودن که به ولایت دیگه‌ای رفتن چون میدونستند که اگه شناخته بشن بالاخره دستگیر میشن برای همینم از ترس فرار کرده پادشاه چهل شطور فرستاد تا طلاها رو بار کنند و بیارن اما بشنوید از خصلت پادشاه که آدم خیلی تمکار و گری بود. پادشاه برای اینکه از غولی که به پیرمرد داده بود شونه خالی کنه، حقه ای سوار کرد. به افرادش سپرد که افسار شطوری رو رها کنن تا از شر خارج بشه و هرچی که میخواد بره. بعدم بیان و شکایت کنن که شطور رو دزدیدن. آدمای پادشاه رفتن و به دستور پادشاه عمل کردن و بعد هم نزد پادشاه اومدن و گفتن قبله عالم باید کسیو که شطوره ما رو دزدیده مجازات کنن پادشاه هم پیرمرد مرد و به حضور خودش فرا خوند و گفت تو جواهراتم رو پیدا کردی و بنظرم آدم دانا و تیز حوشی هستی پیره مرد برای این چه یقین کنم واقعا هیلهی در کارت نبوده و با دست ها هم دست نبودی باید شطور رو پیدا کنی تا طلای رو که به تو قول داده بودم به تو ببخشم. اما اگر نتونی ش رو پیدا کنی از طلا خبری نیست که نیست. پیرمد که میدونست این کار به خاطر اونی که پادشاه از دادن پاداش به اون خودداری کنه گفت. من شطر رو به این شرط پیدا می کنم که نشونه های اون به من بگید یکی از افراد پادشاه فوران گفت نشونه های اون شطر این بود که خیلی لاغر بود و م... لنگ و رنگش هم سفید پیرمرد پیش خودش فکر کرد اگه قرار باشه دزدی شطر رو ببری دیگه چرا حیوان لنگ و لاغری رو انتخاب می کنه. افزارش افسارشو پاره کرد و از شهر خارج شده بعد خطاب به همون شخص که از اطرافیان پادشاه بود گفت پسرم جیباتو پر از کشمش میکنی و همراه من میای و شروع میکنی به خوردن کشمش باشه هر جا کشمش تموم شد شطور همونجا پیر پیرمرد و شخص همراهش به راه افتادند. مسافتی که راه رفتن به کنار چمنزاری رسیدند. مرد همراه پیرمرد دستش رو توی جیوهش کرد و دید که کشمشها تموم شده. رو کرد به پیرمرد و گفت: های من تموم شده. حالا جای شطور رو به من نشون بده ببینیم. و هر دو شروع به گشتن کردند. یهو دیدن که شطر وسط چمنزار دراز کشیده و نشخار میکنه شطور رو آوردن و تحویل پادشاه داده پادشاه که دید حقش نگرفته دست به حیله دیگه ای زد همین که پیرمرد سرشو به طرف دیگه ای برگردوند پادشاه مگسیو تو هوا گرفت و گفت پیرمرد بگو ببینم توی مشتمن چیه پیرمرد نده بود که چی بگه یهو چشش به تار بود افتاد که از ضربه ای داشت میلرزید پیرمرد فهمید که مگسی بهش برخورد کرده که این اینجوری میلرزه اون وقت رو کرد به پادشاه و گفت قربان قربان توی دستتون یه مگسه پاپشاه از جواب پیرمرد خیلی تعجب کرد و در اندیشه هیله‌ی دیگه بود که پیرمرد گفت قربان من خستم اجازه بفرمایید مرخص بشم فردا باز هم خدمت شما میرسم و بعد ادای احترام کرد و از قصر خارج شد و یه راست رفت سراغ رئیس دوزده پیره برد به رئیس دزدا گفت من اومدم که از شما کمک بخوام واقعا نیاز به کمک دارم رئیس دزه گفت چه کمکی پیرمرد پیرمرد گفت ظلم پادشاه تمومی نداره دیر یا زود تمام مردم رو نابود میکنه بهتره امشب به سراغش برید و اونو نابود کنید اینجوری مردم برای همیشه از شرش خلاص میشن اون پادشاه ظالم و تمکاریه دوزدا نقشه قتل پادشاه و کشیدن و شبانه به سراغ اون رفتن و اونو کشت. فرد و صبح خبر قتل پادشاه در همه کوی و برزن پیچید. مردم با شریدن این خبر خوشحال شدند و پیر مردم به جای پادشاه به تخت نشوندن. مردم وقتی بر تخت پادشاهی نشست در خزانه رو باز کرد و تمام ثروت و دارایی پادشاه سابق سابقو بین مردم شهر تقسیم کرد. و چهل دوزی که دیگه دست از دزدی و غارت برداشته بودند از یاران نزدیک اون شدند افسانه ایرانی پادشاه و پیر مرد رو براتون نقل کردم از کتاب افسانه‌های های برگردان حمید بخشمند هر بی بیشک در درون خودش پیام داری و سخنی برای مخاطبین و خانندگانش و هدف ما در این معنیم اینه که از این رهگذر گذر گوشه ای از حقایق پنهان در پس این کلامهای ساده و روان و کسب کنیم و از اونا عبرت بگیریم هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالح پور ویراستار بهار گیویان اجرا مهران دوستی صدابردار زهره خانیپور زهرا عبدالله ساده تا افثانی دیگر بدرود